با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان عزیز تلویزیون رنگی کمان بخش نوزده زندگانی رو در کنار شما بینندگان گرامی دنبال می در بخش 16 ما تا آنجا رسیدیم که کسوی در محاکمه که بین مهدی هدایت با یک زن، سطح پایین یک زنی که قدرتی نداشت قدرت جایی نداشت قدرت اداری نداشت احتمالا پول نداشت ضعیف بود درگیری داشته و دادگاه میاد زیر دست کسوی و وکیل آقای مهدی بولیخون که وزیر دارایی بود نافهمانه باجه حسب الامر را به کار برده بود که این با کسوی برخورد میکنه دوست نداره اینجور جور حرفا رو شما هست مولا میگید یعنی اینکه منو تحت تاثیر قرار بدید یا این زنه بعد وقتو بلافاصله صدایش رو بلند میکنه بر علیه Васиلی مهدی خان و میگه که در پیشگاه قانون مخبر سلطنه وزیر دارایی با فلان زن بیکس چه گدایی می میگه و چون دعوانی بی دلیلی بود رای به هدایت دادم مخبر سلطنه چیزی را که هرگز گمان نبرده بود با چشم خودش دید یکی دیگر از وقایه خیلی پیچیده‌ای که کسری بر علیهان آن داد پیشکار داور بود که در یک دادگاهی در یک محاکمهی میخواست حق کشی بکنه کسری در اون جا هم بر علیه آن شخص که در حقیقت بر علیه داور بود رای داد می که محمد ازاد اهرانچی پیشکار وزیر, وزیر دیگه در دعوای مالکیت دو فقره از دهات اطراف غزمین قصد مداخله و حق کشی داشت نیکن کسری حکم بر علیه او داده بود تهرانچی پس از آگاهی از این حکم دست به دامن داور وزیر عدیه می شود و او را وادار می کند که نماینده ای از جانب خودش به نام شیخ اسدالله ممغانی برای جلوگی از اجرای حکم دادگاه به پیش پس شوی بپیزدی شیخ اسدالله ممغانی هم از یکی از خوزات خیلی معروف عدلیگه نوین رضا بود و خواستار تغییر حکم باشه کسی حکم بر علیه این تهران چی داده؟ به گوش, گوش پروینچی رسیده؟ یه تهرانچی رسیده؟ اما آدم؟ اون رفته از داور کمک خواسته داور یکی رو فرستاده که از کسفی میخواد این حکم که داده شده به هم بزنه میگه این آدم که خودش هم غازی بود آمد و نشست پهل دست من و ابتدا از زبان خودش از طرف خودش درخواسته تخییر حکم میکنه میگه آقا این پروینچی مقام بالایی دارد میتواند شما را عذیت بکند بهتره که شما به نفر اون رأی بدهید دقیقا میگه که آقا تهران کی پیشکار وزیر است میتواند به شما زیان برساند کسوی فریادش شد بر سر همین قاضی مین و بلند میکند میگوید که خوش سخنی نگویید می کشدم میسواند به من زیان رساند مرا ناگه گیر گرداند و نیشی زند، آیا باید به خواهش او از رأی خود باز کردم این آقای ممغانی بعد اعتراف میکنه میگه که این درخواست از جناب از جانب خود وزیر است دیگه بدتر دیگه صدای کسوی بیشتر بلند شود در اینجاست که سخت سختتر از قبل می سخت به داور میفرستد میگوید به آقای وزیر بگویید من هیچگاه به خواهش این آن از فهمیده خود باز نگشتم بویژه که شما روزی که ادلیه رو باز کردی قرآن به جلوی ما گذاردی. و ما سوگن خوردیم و خدا را گواه گرفتیم که از قانون و راستی جش نپوشیم پس همه آنها بازی بود؟ شما چگونه میخواهید که من از ری خود بازگردم این هم یکی از مسائلش و بالاخره آخرین درگیری کسوی که موجب شد از عدی بیرون رود درکیزی با شخص رزا شاه و دربار رزا شاهی بود آخرین گرد اردان گردن فرازانه کسروی معروف به داستان ای این است که بر علیک دربار رزا شاهی توکم داد و کرد و این خود در آن دوره مثل توب در تمام از تمام جان ترکید خلاصه ای مطلب این است که در شهرک ادین زمین های وقفی مشد از هشتاد سال پیش در اختیار کشاورزان بوده و آنان در آنجا سکونت کرده و به کشت و بهره برداری پرداخته بودند زمانی که شاه به قدرت میرسد به بهانه اینکه که پادشاه در هر زمان متولی وقتهای آستانه می باشد به بازگردانیدن این زمین ها اراده می کنند. مردمی 80 سال است در اونجا زندگی کردن خود کس خواهد گفت خانه ساختن زمین ساختن دارند به ممکت هم کمک می کنند. آخا می خواد بر خودش بازگردانه کس روی می نمیسد ببیشه که در آن میان داستانی رخ داده بود که و آن این که خالصی زاده آن آخوند هوچی از اراق آمده و به نام اینکه مرا ها بیرون راندند از اراق در تهران دستگاه حوکتیگری بزرگی در چیده بود اینهای خالصی زاده را قبل از این با خود رضاشاه شاه درفت داده بود اون موقع بود وقتی که بقای جمهوری خواهی پیش آمده بود بر علیه رضاخان قیام کرده بود مردمو به قیام واداشته بود کاری کست از سین آقایون میاد و به مجلس آمده بود و در همین مجلس از طرف نماینده های طرف رزا خان یک کتک مفصلی هم خورده بود ولی امروز چه گذشته بود که رزا شاه این را نواینده خودش کرده برای بازگرداندن زمینهای های حالا کسری میگه رزا شاه برای اینکه او را خاموش گرداند دیه های وقفی مشد را هرچی در پیرامون های پیرامون،, پیرامون تهران میبود به اجاره او سپرده بود این آخوند در این هنگام فرصت یافته و با چند تن ژاندارم به این رفته و در آنجا نشیمن گرفته خانه ساخته و به نام آن که حقوق حقی آسان مقدسه امام را زنده میگردانم دست ستم به کشاورزان بازگردانیده بود که این درد دیگری به آنان میبود کار همشگیه اینا دیگه کار همشگیه ضعیف کشن اینا زمین های این افراد بدبخت رو می در دربار گذشته از آن که زمین ها رو از دستشان می از دست رایا می به درخت هایی که کاشته و خانه‌هایی که بنیاد گزارده بودند و هایی نمی دن. آنگاه با آزمندی شاه، و ستمگری خالصی زاده میرفت که اجاره سالهای گذشته را نیز به طلبند و کشاورزان از این بابت در بیب هراس بودم <تصفح> به هر حال پرونده به جیره داشته کشدی میرساد جسو می, می به همکاران گفتم پرونده ای است در, در بار دربار که به غلط رای داده شده قبلا رای دادن کشاورزان شکایت کردند این شکایت نیست از کسبی خلاصش درباره دربار دروار که به غلط رای داده شده من آن را شکسته و به زیان دروار رای خواهم داد در مقابل دلسوزی همکاران که می‌ترسیدند از زندگی کسبی میگوید کاری کنید که به میگویند کاری کنید که خودتان رأی ندهید وی جواب میداد اگر بخواهم خودم رأی ندهم باید به گردن یکی از خود اندازم در حالی که آنان ناتوانتر از منند هر یکی از آنان باشد خردش کنند ولی مرا به آسانی خورد نتوان کرد خرور باش تنها آن خواهد که مرا بیکار کردانند سپس ادامه می‌دهد. آدمی می توانند گیاه بخورد و زندگی کند این چه است که ما را فرا گرفته است جسدنی رعی را که بر علیه کشاورزان داده شده بود شکسته و خود رعی به رفع مزاحمت می دهد. ولی معلوم می شود که اداره اجرا از اجرای آن خود خودداری می کنند ندارن ندارند کار کار رزاشاخه شاه رزاشاخ همه میترسیدن از او حتی اجرای دادگستری از دیگه نیست این حکمی که ساده شده از اجراش وحشت داشتند به همین دلیل مینویسد که یکی از مأموران اجرا را به همراه برداشتم و حکم بر علیه دربار را به اجرا گذاشتم این حکم همانند توپی در شهر ترکید شاه و وزیر دیگه و وزیر دربار و دیگران همه از این حکم خشمناک بودند فردای آن روز کیبرتاش وزیر دربار کسبی کس را به دربار فرا میخواند پس از ملاقات با لحن پرخاشگرانه میگوید آقا چرا بر ما میتازید کسسبی در جواب میگوید قاضی در رأی خود آزاد است کیمورتاش با تنز و خش قاضی ج... در رأی خود آزاد است قاضی مستخدم دولت است و باز کسبی جواب میدهد قاضی مستخدم دولت نیست قضاوت خودش قوه جدایی است مشروطیت ینو گفته تیمورتاش جواب میدهد، اینها حرفهای ها که حرف های باز جواب میدهد، اینها حرفهای قانون است قاضی تا آزاد نباشد قاضی نتواند بود و در همونجا به تیمورتاش می گوید که این کشاورزان زمین ها را آباد گردانیدند ریشه بر روی زمین می دارن درخت های کنسال می دارن. خانه ها ساختند در بار هر کاری که می اقلا باید بهای های ریشه و درخت و خانه اونها را بپردازد همه چیز به کنار این چه صورتی دارد که یک دست کشاورزان و رنجبران به نام این کشا و در بار به آنها ظلم کرده در شهر بگردن و همه جا ناله کنند و در همه جا گفته شود بروید بعد دیگه در عدلی هم به تسلمشان گوش نداده محکومشان کنند و بازگردانند آیا این به آبروی دولت بر نمیخورد خورند اینکه با بالاترین مقام کشور در افتاده بود قدرتی که دیگران در مقابلش جرعت نفس کشیدن نیست نداشتند دستگاه طویل و عریض رزا شاهی در مقابل منطق کسری به بزاه ظاهر خاموش شد لیکن او را از شغنش برکنار کردند و سپس برایش توت چیدند فری با کسی که در پرونده خدمتش به جز راستی و شرافت و پاکی و صداقت نبود چه برای بر علیه او کارساز می توانست باشد در این که دشمن نیز به عظمت چون انسانی تعظیم می کند آخرین کلام کسدی در مقابل قدرت رضاشاهی نیز شنیده نیست زمانی که به حکم انتظار خدمت خیش را بر روی میز کارش مشاهده می کند منتظر خدمتش می کند. و این برمی گدد این حکم رو بر روی میز کارش می بینه زمانی که به این حکم انتظار خدمت خیرشا بر روی میز کارش مشاهده می کند سرفرازانه آخرین فرگاد اعتراضش رو بر سر قدرت و حکومت رزا سر می دهد. وزیر خود می نویسد خدمت در انتظار من باشد و راستی که به هماسه می و آن در سال 1309. بود البته کسوی همزمان با کار و مسئولیت سنگین خودش از پجوهش های قافل نبود در همین دوره از خدمتش بود که او به نوشتن کتاب شهر گمنام پرداخته و بخش های یک و دوم آن را به چاپ رسانیده بود در زمستان سال 1308 کتاب کارنامه اردشیر بابکان را ترجمه کرده بود منتشر نمود. و همونست که در همین دوره حکومتش در همین دوره خدمتش میگوید ما مرا با خدا پیمان است که از پا ننشینم و این راه را به سر برم و این راه و را به سوی زندگی سختی راه نممای کرد تموس به حییر